افسان به نام خدای یگانی مهربان. سلام. با اوج گرفتن تحقیقات مردمشناسان در اروپا، افسانه‌های آمیانه به منزله بخشی از ادبیات شفاهی مورد توجه مردمشناسان قرار گرفت. یاکوب گریم و ویلهلم گریم اولین محققانی بودند که به طور جدی به گردآوری افسانه‌های آمیانه ژرمنی پرداختند این دو برادر یعنی یاکوب و ویلهلم گرین هدف خودشون رو از بررسی افسانه‌های آمیانه بازآفرینی مجدد اساتیر و پهلوانان قدیم ذکر کردند در این هفته یه هزار افسان افسانه‌ای رو براتون نقل می‌کنم به نام پادشاه ریش باستر که به برادران گرین و ترجمه از آقای محمد رضا شمس روزی روزگاری در سرزمینی دور پادشاهی زندگی میکرده دختری زیبا داشت اما این دختر به حدی مقرور و متکبر بود که هیچ خاستگاری و لایق خودش نمی‌دونست. پادشاه که از این اخلاق دخترش خسته شده بود اعلام کرد که میخواد جشن بزرگی برگزار کنه و به همین بهانه تمامی جوانای گوش و کنار رو دعوت کرد تا اگه مایلند از شاهزاد خانم خاستگاری کنه بعد از اومدن مهمون ها همگی اونها در یه صف مطابق درجه و شعن خودشون ایستادن. اول پادشاهان، بعد شاهزادگان، دوک ها، کندها ها، و آخر از همه بارون ها. دختر پادشاه با غرور از جلوی این صف رد شد. اما همه اونها رو به باد تمسخر گرفت. یکی بیش از حد چاق بود. شاهزاده شاهزادگانم گفت بشکه آب. دومی قد بسیار بلندی داشت شاهزاده خانم گفت چه تراز و بیقواره سمومی چاق و کوتاهقط بود شاهزاده خانم گفت خب از اونه که مغز داشته باشه چارومی رنگ پریده بود نظر شاهزاده خانم این بود که مثل مرده میمونه پنجمی بیش از حد رنگ و رنگ بود و شهزاده بون گفت توتی کاکل دار ششومی بوز داشت شاهزاده خانم گفت مثل ترکی سبزی که داخل اچاق انداخته روشن و همینطور به کارش ادامه داد و روی هر کدوم از خاستگاراش اسمی گذاشته اما بیشتر از همه با پادشاه جوان و مهربانی شوخی کرد که چونش کمی کج و خمیده بود شاهزاده خانم به صدای بلند خندید و گفت <تصفيق> <تصفيق> چونش مثل منقاری باسترک میمونه از اون روز به بعد همه پادشاه جوان رو ریش باسترک صدا زدن پادشاه پیر وقتی دید که دخترش همه خواستگارانش رو به باد تمسخر گرفته خیلی عصبانی شد و سوگند یاد کرد که دخترش رو به اولین کسی که جلوی قصب بیاد بده. چند روز قبل از این واقعه نوازنده گردی. زیر پنجره های قصر اومد تا با نواختن ساز چند کی پول به دست بیاره به محض اینکه چشم پادشاه به اون افتاد دستور داد که اون رو به داخل تالار بیارن نوازنده با لباس‌های ژنده و, و کثیف به داخل اومد و در برابر پادشاه و شاهزاده خانم آواز خوند و وقتی آواز خوندنش تموم شد با التماس گفت قربان قربان من دور گرد بینواییم که به نون شب محتاجم اگه اگه لطف کنین و که یه ناقابل به من گرسته انایت کنین تا آخر عمر دعاتون میکنم خواهش میکنم جناب پادشا خواهش میکنم پادشا که سوگند خورده بود دخترش رو برورین کسی بده که جلوی غصب بیاد به نوازندگی دورگرد گفت آه من به جای چند سکه ناقابل دخترم شاهزاد خانم رو بنوان همسر بدنیدم شاهزاد خانم با شنیدن این حرف پدر به گریه و التماس افتاد اما پادشاه گفت من سوگند خوردم و باید به اون عمل کنم حالا زود باش و با همسرت راه بیفته و هر جا اون میره باش بر دختر ناچار شد پای پیاده همراه نوازنده بره وقتی اونا به جنگل بزرگی رسیدن شاهزاده خانم گفت آه چه جنگل زیبایی این جنگل متعلق به کیه و بعد پاسخ شنید ریش باستر که خوب و مهربون اگه همسرش شده بودی این جنگل الان متعلق به تو بود شهزاد خانم آهی کشید و گفت آه صد افسوس اگه با ریش ازدواج کرده بودم چه چیزهایی که مال من نمی شد؟ بعد اونا به مرزاری رسیدن و اون پرسید این مرزار سرسبز و پهناور مالکیه؟ و پاسخ گرفت، مال پادشاه ریش بسترکم. بعد به شهر بزرگی رسیدن و شاهزاد خانم پرسید این شهر زیبا و دیدنی متعلق به کیه؟ یه نفر گفت مال پادشاه ریشباسترک شاهزاده خانم بیچاره نالش بلند شده و گفت آه آه, آه آه آه که من چقدر نادان بودم که با ریش ازدواج نکردم مرد نوازنده؟ از شنیدن این حرف همسرش یعنی شاهزاده خانم سخت ناراحت و عصبانی شده و گفت من... من از این موضوع اصلا خوشم نمیاد که تو مدام آرزوی شوهر دیگه ای رو میکنی مگه من به اندازه کافی خوب نیستم ها؟ شاهزاد و خانم اخ کرد و چیزی نکرد اما در دل همچنان حسرت ازدواج با ریش باسترک و تصاحب اون همه سربتونو داشت شاهزاده خانم و همسرش نوازندگی دورگرد مدتی راه رفتن تا به کلبه خیلی کچی که رسیدن شاهزاده خانم با اکراه گفت او این چه خونه کدوم بدبخت و بیچاره ای ممکنه باشه نوازنده دورگرد گفت خونه من یا بهتر بگم خونه ما شاهزاده خانم با تعجب و کمی وحشت گفت خونه ما نوازنده دورگت گفت بله بله خونه ما جایی که باید با هم توش زندگی کنیم شاهزاده خانم چاره جز پذیرفتن این وضعیت نداشت مجبور شد برای وارد شدن به داخل خونه سرش رو خم کنه و وقتی وارد خونه شد رو به همسرش کرد و پرسید خب خدمتکارا او نه کجان همسرش فریاد زد کدوم خدمتکارا تو باید تمام کارا رو به تنهایی انجام بدی فهمیدی؟ اینجا از خدمتکار خبری نیست حالا زود باش آتیش روشن کن زود باش مقداری آبم رو آتیش بذار بعدم یه شامی چیزی درست کن و بعد صداش رو بلند کرد و گفت مگه نمیمینی چقدر خستم زود باش زود باش شاهزاده خانم با تسباچکی دور خودش چرخید و نمیدونست چیکار کنه آخر اون هیچ وقت آتیش روشن نکرده بود و همیشه بهترین غذاها رو آماده جلوش میذاشتن و اصلا از پخت و پز و آشپزی سر ای نداشت نوازنده دورگرد که این وضعیت رو دید خودش دست به کار شد و آتیش روشن کرد و شام مختصر بخور و نمیری تهیه کرد روز بعد مرد شاهزاده خانم رو از خواب بیدار کرد و گفت پاشو پاشو پاشو تو کی میخوای بخوابی ها مگه نمیبینی کلی کار داریم از امروز باید تو کنی یا سبد بافی فهمیدی چی گفتم پاشو شاهزاده خانم با بیحوسلگی در حالی که خمیازه میکشید گفت اما من که سبد بافی ولد نیستم مرد نوازنده گفت خودم یادت میدم خودم یادت میدم و بعد از خونه بیرون رفت و مقداری شاخی بید برید و با خودش به خونه آورد و به شاهزاد و خانم گفت این شاخه ها رو خم کن و به اونا شکل بده ببین اینجوری به همین راحتی. شاهزاده خانم که هیچ وقت از این کارا نکرده بود از احدیگ این کار بر نیومد و دستاش زخمی و خونه لود شده مرد نوازنده که نومی شده بود به همسرش گفت باش باشه از خیر سبدبافی میگذاریم بهتر م... نخریسی کنی آره نخریسی برای تو راحتتر و ساده تره و بعد رفت و چند ساعت بعد با بغلی پر از پشم نزد همسرشونه دختر پادشاه در گوشه نشست و نخریسی رو شروع کرد اما نخ زبر و خشن انگوشتای زریف و اون رو بد جوری برید به طوری که به شدت از اونا خونجاری شد همسرش که این سحنه رو دید با ناراحتی گفت آه... چه اشتباهی کردم با یه شاهزاده خانم استواش کردم تو حتی از احده ساده ترین کارا بر شاهزاده خانم که از این حرف همسرش ناراحت شده بود با عصبانیت گفت منم اگه با ریش ازدواج ازدباش میکردم وقت مجبور نبودم سبت ببافم یا نخریسی کنم مرد نوازند از گروه در رفت و گفت قبلنم به تو گفتم اصلا خوشم نمیاد که تو مدام آرزوی شوهر دیگه ای رو بکنی شاهزاده خانوم پرمدعا شاهزاده خانوم سکوت کرد و به گوشه ای پناه برد همسرش گفت حالا باید با درست کردن کوزه ها و ظرف های سفالی کار به یه تازهی را بندازیم وگرنه از گرسنگی تلف میشیم شاهزاده خانم با ناراحتی گفت ولی من هیچ سرشده ای از کوزه گری ندارم همسرش گفت نگران نباش من کوزه و ظرف سفالی درست میکنن تو فقط اونا رو ببر بازار و به قیمت خوبی بفروش همین شاهزاده خانم با تحجب پرسید من؟ من باید کوزه ها و ظرف های سفاری رو بفروشم اونم توی بازار؟ همسرش گفت البته البته که تو باید این کارو انجام بدی شاهزاده خانم با خودش گفت آه. اگه کسی از سرزمین پدرم به این بازار بیاد و منو در حال فروش کوزه ببینه آه چقدر به من میخنده حد باشه من یه شاهزاده خانمم به بعد شروع کرد به بهانه آوردن و التماس کردن تو شاید همسرش از رفتن اون به بازار منصرف بشه ولی نه بحانهاش نه التماسهاش فایدهی نداشت که نداشت و شاهزاده خانم مجبور شد این کار رو انجام بده وگرنه از گرستنگی تلف میشده روز اول وقتی شاهزاده خانم کوزه ها و ظرف های سفالی رو به بازار برد همه چیز به خوبی برگزار شد چون مردم به خاطر اون که شاهزاده خانم خیلی زیبا بود از اون ظرف و کوزه خریدن و نه فقط قیمت اونها رو تمام و کمال پرداختن بلکه بعضی حتی پولشون رو به اون دادن و سفال رو با خودشون نبردن با پولایی که در روز اول به دستونده بود شاهزاد خانم و همسرش چند روزی یک غذای سیر خورده. بعد از چند روز نوازنده دورگت دوباره دست به کار شد و تعداد دیگهی دیگه کوزه و ظرف و صفال درست کرد و به همسرش داد که اونا رو به بازار ببره و بفروشه شاهزاد خانم هم کوزه ها و ظرف های صفالی رو برداشت و به بازار رفت به ساعتش رو در گوشه از بازار پنگ کرد و منتظر شد تا کسی بیاد و ازش کوزه یا ظرفی بخره اما یه دفعه سرباوزی سوار بر اسب از سروشیبی بازار به تاخت پایین اومد و مستقیم به میون به ساعت اون رفت و همه رو خرد و خاکشیر کرد شاهزاده خانم از این حادثه سخت به گریه افتاد و نمیدونست با این مصیبتی که براش پیش اومده چیکار کنه و جواب شوهرش رو چی بده اما چاره ای نداشت جز اینکه که با گریه و ساری به خونش بره و تمام ماجرا رو برای شوهرش تعریف کنه وقتی شاهزاده خانم ماجرای خرد و شدن کوزه ها و ظرف های سفالی رو برای شوهرش تعریف کرد مرد نوازنده سرش داد زد که آخه آخه چه کسی برای فروش کاسه و کوزه گوشگه بازار چه میشینه ها شاهزاده خانم که نمیدونست چی بگه شروع کرد به گله مرد نوازنده که دلش با حال زنش سوخته بود آروم گفت خب هر دیگه گریه نکن من میدونم تو به کارای معمولی عادت نداری نگران نباش من تازه از قصر پادشاه اومدم اونا به یه کلفت برای تو آشپسخونهشون نیاز دارن تو میتونی از همین فردا به اونجا بری و کارت رو شروع کنی اینجوری دیگه خریم نداری و همونجا هم شکمت رو سیر میکنی شاهزاده خانم هرچند براش خیلی سخت بود که به عنوان کلفت توی آشپزخونهٔ قصر پادشاه کار کنه ولی به ناچار پذیرفت و به این ترتیب شاهزاده خانم مقرور افسانهٔ ما شد خدمتکار آشپزخونهٔ قصر پادشاه اون هر چیزی که آشپز بهش میگفت اطاعت میکرد ظرفهای کثیف و میشست و می تهموندهٔ غذاها رو در ظرفی میریخت و به خونه میبرد و با شوهرش میخود مدتی گذشت تا اینکه اعلام شد قرار جشن عروسی پسر بزرگ پادشاه برگزار شاهزاده خانم بیچاره کنار در سالن ایستاده بود و فقط تماشا میکرد با روشن شدن چراغها و ورود مهمونایی که یکی از دیگری زیباتر بودن و همگی های فاخری به تن داشتند خانم ما با قلبی اندوهگین به یاد دوران خوش قصر پدرش و زندگی فعلی با شوهرش افتاد از غرور و تکبری که اونو به چنین روزی کشنده بود توبه کرد و زیر لب با خودش گفت خدایا خدایا می دونم, می دونم که چقدر غرور و تکبر داشتم و هیچ کس رو لایق خودم نمیدونستم. حالا حالا به اشتباه خودم پی بردم حالا می دونم تکبر و غرور چیز خوبی نیست و میخوام همه رو دوست داشته باشم خدایا خدایا کمکم کن چشمای شاهزاد خانم پر از اشک پشینگونی شام گاهی خدمتکارها از غذای لذیذی که به داخل مجلس می بردن تکیبش میدادن. و شاهزاد خانم هم غذاها رو توی جیباش می تا به خونه ببره و با شوهرش بخوره در همون لحظه پادشاه در حالی که لباسی از ابریشم و مخمل بتند داشت و زنجیری طلا به گردن و ویخته بود وارد شد و تا شاهزاده خانم رو دید از او خواست به وسط مجلس بیاد. اما شاهزاده که به شدت ترسیده بود امتنا کرد. میدونین چرا؟ چون پادشاه همون ریش باسترک بود که زمانی به خواستگاری شونده. و شاهزاده خانم از روی غرور و تکبر اونو به تمسخور گرفته. پاکشا همچنان اصرار داشت که شاهزاده خانم به وسط مجلس بیاد. اما یه دفع ظرفی که شاهزاده خانم پر از ته‌منده‌ی غذاه کرده بود به زمین افتاد و شکست تکه‌های گوشت و سیب زمینی و هویج و مخلفات دیگه به اطراف ریخت حاضران در مجلس با دیدن یعنی این صحنه به خنده افتادند و شاهزاده خانم همچنان از خجالت آب شد که آرزو کرد ای کاش زمین دهن باز میکرد و اونو میبلید شاهزاده خانم بیچاره با دست با به طرف دردوید و خواست از قصر خارج بشه اما روی پله با مردی روبرو شد که اون رو به تالار قصر بازگردوند وقتی که شاهزاد خانوم به اون نگاه کرد شگفت زده شد بله دوباره خود پادشاه ریش بود پادشاه با لحنی مهربان گفت نترس. من و نوازنده گردی که شوهر تو یکی هستیم. من به خاطر عشق به تو مجبور شدم این نقش رو بازی کنم. اون سربازیم که با اسف از میون کوزه ها و ظرف های سفالی تو کرد، خود من بودم. تمام اینها به خاطر این بود که تواضع و فروتنی رو جانشین غرور و, و تکبرت کنم شاهزاده خانم با شنیدن این حرف به گریه افتاد و گفت: من لایق همسری تو نیستم من به تو خیلی بکی کردم تو رو مسخره کردم اما پادشاه گفت اه اون روزهای بداندوه بار رو فراموش کن و ما الان میخواییم جشن عروسی واقعین رو برپا کنیم و برا فاصله ندیم مخصوص وارد شدن و لباس های زیبا و فاخری رو به تن شاهزاده خانم کردن بعد پادشاه ریش که دستور داد پادشاه پیر پدر شاهزاده خانم و تمامی درباریانش رو خبر کنن تا در این جشن باشکو حاضر بشن و از اون زمان به بعد بود که شاهزاده خانم افسانی ما عنوان ملکی سرزمین ریش که مزه زندگی شیرین رو چشید و برای همیشه غرور و تکبر رو از خودش دور کرد افسانه پادشاه ریش‌پاستر رو براتون نقل کردم. از کتاب های خیالیانگیز به قلم برادران گریم با ترجمه از محمد شمس. امیدوارم از شنیدن این افسانه لذت برده باشید. زارفزان کار مشترکی بود از نویسنده و سردبیر زینت سالحپور ویراستار بهار گیویان اجرا مهران دوستی صدابردار محفام پرتو تیگه کننده زهرا عبدالله زاده صانی دیگر پدرو